اوزو بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین از و السلام و علی نبی و آله طاهری. خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم و روز به خیر عرض می کنم که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و از هر گونه آفتی جسمی، روحی، روانی بدور و در کمال شادمانی و توفیق از طرف خداوند باشید اما بحث ما وارد بحث دوم از تشبیه میشیم به اسم اقسام تشبیه اقسام تشبیح. قبلش من یه مطلبی رو بگم بعد این اقسام تشبیه رو بخونم نسبتا ساده است یعنی همه مواحظ ساده است اگر انسان گوش دل بده همه ساده است سخت نیست ما سخت نداریم ببینید هر مقسمی رو مقسم یعنی چیزی که شما تفصیمش میکن هر مقسمی رو میشه با لحاظ مختلف یعنی اعتبار مختلف تقسیماتو متعدد کرد اونی قاعده است هر مقسمی رو میشه با لحاظ مختلف تقسیم مختلف کرد با اعتبارات مختلف تقسیماتو متعدد کرد مثلا فرصم همین کلاس خودم شما می تونید اینو مثلا تقسیم کنید از لحاظ اینکه اینها بومی قزوین هستند یا بومی نیستند از خارج از استان خب تقسیم میشه یه عده میرن میتونید تقسیم کنید از جهت اینکه اینها جنس پسر هند یا جنس دختر میشه یه تقسیم میشه میشه تقسیم کنید از جهت اینکه مثلا فرض بفرمایید که اینها صد واحد تالا گذروندن یا زیر صد واحد میشه تقسیم. متعدد میشه تقسیم کنید دیگه مجردن یا متأهل تقسیم کنن یه مقسم رو با لحاظ مختلف شما میتونید بگید تقسیمات متعدد خب مقصودم از این چیه؟ مقصودم بحث تشبیه تشبیه شما تشبیه رو تشبیه رو از لحاظ و اعتبارات مختلف میتونید تقسیمات متعددی کنید مثلا شما یه تقسیم ما سابق داشتیم گفتیم که تشبیه به عادی و معمولی و معکوس و مغلوب تقسیم میشه عادی و معمولی گفتیم که 95 درصد اونیه که ورچه شبه توی هم به اشهر و ازهر و اتم ماکمل نسبت به مشبه حالا بعد تشبیه مقلوب و معکوس رو میگیم حکسش او یه تقسیم بود یه تقسیم الان میکنیم یه تقسیم بعدا میکنیم میگیم تشبیه دو قسمه یکی سریحه یکی ضمنیه. باز دوباره تقسیم میکنیم تشبیه رو میگیم تشبیه تمثیلی و غیر تمثیلیه پس این شما نباید اشتباه در این مطلب داشته باشید که چطور تقسیم تقسیم تقسیم هر کدوم از یه لحاظ امروز میخوایم تشبیه رو تقسیم کنیم از لحاظ اینکه که وچه شبه یا عدات تشبیه ذکر شده است یا ذکر نشده است یعنی ملفوظ است یا ملفوظ است ملفوز است ملفوز است یا ملحوز است درست پس پس از این لحاظ داریم تقسیم میکنیم که عدات تشبیه و بچ شبه ملفوزند یا بگید ملحوزن به چهار دسته تفصیل میشه یعنی شما از در خودتونم بشینید بخواید مقایسه کنید چهار دسته یک عدات تشبیح و وچه شبه هر دو ذکر شدند عدات تشبیح و وجه شبه هر دو ذکر شدند مثل بگید زیدون کلا عصاد فلجرد زیدون کلا عصاد فلجرد زید مشابه عصاد مشابه به کاف عدده تشبیه فلجرد لش شد زیدون کلا عصاد فلجرد درست شو هم عدات تشبیه ذکر شده هم شد خب به این تشبیه اسمن چی میگن اسمشو چی بگیم به اسم دیگه اسم یاد بگیم. هر کجا ادات تشبیه ذکر شده باشد اون تشبیه بهش میگن مرسل تشبیهی که عدات تشبیهش رو ذکر شده بهش میگن چی چی مرسل شد و هر کجا از بچه شبه ذکر شده باشه بهش میگن مفصل بهش میگن چی مفصل پس این تشبیه چی شد زیدون کل اسد به مرسله مفصله پس اگه من بعدا گفتم این تشبیه مرسله یعنی چی یعنی ادو تشبیه شده اگه گفتم مفصله یعنی چی یعنی وجه شبهش ذکر شده این قسم اول قسم دوم قسم دوم وچهشبه وچه شبه ذکر شده اما عدات تشبیه حذف شده عدات تشبیه ذکر نشده درست شد مثل مثل زیدن اسدُن زیدون زیدن اسدُن زید مبتدا اسد خبر زید شیر است خب ما میفهمیم یعنی شیر نیست یعنی مثل شیره ولی اگه شیر بود که هیون بود زید شیره یعنی مثل شیره درست شو فنجرعه هم که رعد شده خب این تشبیه رو چی بهش بگن هر کجایی که عدات تشبیه حذف شده بهش میگن مؤکد میگن تشبیه رو مؤکد الان این تشبیه دوم دوم اسمش چی میشه مؤکد مفصل مؤکده یعنی ادات تشبیهش ذکر بگید نشد وش شبهش ذکر شده مفصل حالا معکده اسمش شد معکد به چه دلیل؟ بدهن که وقتی تشبیح عدات تشبیحش هست میشه قوی قویتر میشه یعنی شما بگید فلانی مثل گل میمونه بگید مثل گل میمونه این با قول خودمون یه درجه ای از تعریف اوست اگه بگید فلانی گله این میمید چقدر بیشتر میشه بگید فلانی مثل شیره یا بگید فلانی شیره این دومی تاکیدش چیه بیشتره ولی هر دوتاش یعنی مثل شیره اما یکیش مثلش در تقدیره به ذهن انسان میارده که انگار خودشیره درست شد مرسل چرا بهش گفتن مرسل؟ مرسل یعنی رها آزاد چون از قید تاکید آزاده مرسل یعنی مطلق چون از قید تأکید بگید آزاد. سوم چی سوم عکس دومه عدات تشبیه هست وجهشبه نیست مثل اینکه بگیم زیدون کالعسد زیدن کالعسد فیالجرعه نیست اینو چون عدات تشبیه هست بش میگن مرسل وندی چون وجه شبه نیست بش میگن مجمل وجه شبه نیست بش میگن چی مجمل یعنی چی؟ یعنی وضعیت شبه به طور اجمالی ذکر شده. یعنی تحت لفافه ملحوظه. مفصل یعنی کاملا بیان شده که وضعیت شبه چیه، فلجراد. مجمل یعنی بعد به طور اجمالی ذکر شده. تحت لفافه. شما دقت کنی ببینی زید تشبیه به شیر میشه در چه جهته. در چه جهته؟ اونجا میفهمه که خب مثلا در جهت جرأت. چو پس بهش میگن چی چی؟ بگید مرسل مجمل علتشون هم گفتیم خب قسم چهارم چیه؟ قسم چهارم اونیه که نه وچ شبه ذکر شده نه عداد تشبیل مثل که بگیم زیدون اصدون زیدون اصدون همه میفهمند زیدون اصدون زید شیره است یعنی مثل شیره و همه میفهمن که مثل شیره یعنی در جرعت مثل شیره نه در دوم داشتن تو ولی خب مبالغش خیلی بیشتر میشه درست شد این آخری رو چی باید بهش بگم طبقه اون اسمایی که گفتیم یعنی باید بهش بگم معکد مجمل معکد یعنی اعداد تشبیه نداره مجمل یعنی شبه نداره ولی یاد بگیرید معکد مجمل اصطلاح نیست و گفته نمی‌شود. معکد مجمل اصطلاح نیست و گفته نمی‌شود. بلکه به این قسم چهارم میگن تشبیه بلیغ. تشبیه چی؟ بلیغ. چرا؟ بلیغ نه اینکه یعنی زیبا. از بلاغت نیست، از مبالغه است. یعنی مبالغش زیاده تأکیدش زیاده این تشبیه از همه تاکیدش چیه؟ بیشتر درست تشبیه چی؟ بلیق تشبیه بگو بلیق کلانه چهار قسم شد اون قسم اول از نظر مبالغه زعیفترین تشبیهه تو تشبیهی که ودشبه و عداد تشبیه است ضعیفترینه از نظر مبالغه ولی از نظر توضیح از همهشون واضح تره. هیچ نقطه ابهامی توش نیست عداد تشبیه هست و عداد هست این قسم آخر قویترینه، اون از اولی این اقواز قویترین ترین تشبیه مبالغش از همه بگید میشترین میگن تشبیه بلیغ یعنی زو مبالغت دارای مبالغ اقواز این دو دوم و سوم متوسطند یعنی نه مثل اولی ضعیفند از نظر مبالغه نه مثل آخری بگید قوی هستند یه نقطه مثبت دارم حالا یا وقت شبه هست شده یا اعداد تشبیح تأکید شده از یه لحاظ قوی از یه لحاظ دیگه نه ذکر شده متوسط درست شد؟ پس اولی میشه از عف از نظر تشبیهی آخری میشه اقوا این المتوسطان متوسطان این دوتای وسطی هم متوسط حالا؟ یه سوال کدوم یکی از این چهار قسم تشبویر بهتره سوال کدومش بهتره. جواب اینه هیچ کدوم هیچ کدوم از اون یکی بهتر نیست؟ هیچ کدوم بهتر نیست؟ اینا مثل آچار میمونن آچار شماره یک داره دو داره سه داره چهار داره. شما کدوم پیچو میخوای واکنی هر کدوم پیچ خاص خود شو باقی یه اگه یه جای قصد توضیح هست تو قصد به قول خودمون بیانه و از نوع اولی شد. یه جای قصدت به قول خودمون مبالغه. هست و شیعه را آشغانه داری میگی اونجا دیگه به معشوق میگه انتا شمسو به محبوب میگه انتا قمرو مبالغه. هم یه جای هستش که نه به حد اول نه به حد دوم متوسط از وسط است درست شد یا نه؟ اینا در واقع مثل مثل آنتی بیوتیک میمونه. آنتی بیوتیک۵ره داره 500 داره یک میلیون دوی میتونی بگی کدومش خوبه 250 خوبه مثلا اگه بچه باشه. یک خوبه اگه مثلا خیلی دوفونت شدید باشه 500 هر کدوم صدجا خودش خوبه، اشتباه استفاده بکنی غلط پسمثلا از بلاقت سازت میشه، چون گفتیم که بلاقت، آوردن کلام فسیح صحیح مطابق مختزای حال این مطابق مختزای حال نمیشه اگر جایی میخوای توضیح بدید از تشمیح بری راسته پس هیچ کدوم اینها بر دیگری ترجیح بگید ندارد ترجیح ندارد الان نگاه کنید با این چیزی که من گفتم در رو طور کامل گفتم حالا بیاید توی قباید درس، قباید تکرار عط تشبیه المرسل تشبیه کدومه؟ کدام کرد فيه الادات اونی که ادات تشبیه توی ذکر شد چرا مش گفتن مرسل گفتی مرسل یعنی مطلق یعنی رها چون از قید تأکید رهاست دووام عط تشبیه المعکد معکد کدام ماذکرت منه الادات اونی که ادات تشبیه توش بگید پس و معلوم عدد تشویح هست میشه تحکید میشه تشویح دیگه شما میگید مثل شیره یا میگه شیره خب شیره تحکیدش چیه؟ بیش سه از تشویح مجمل بعد از تشویح مفصلی این جا به جا نوشته اول باید اونی که هست رو بگه بعد اونی که هست میشه مثل اون بالا اول مرسل و فرمای که هدن بعد اول مفصله بگه بعد مجمل از تشویح مفصل. تشبیه مفصل کدومه مازو که رفیه شده، اونی که وچه توش زید مفصله مفصل این توضیح داده شده کاملا توضیح داده شده که زید مثل شیلر چه جد مفصل، مجمل از تشبیه و مجمل ماهوزف هم این ها وچوشبه اونی که وچه توش بگید حذف شده خبه وچه حذف شده وچه لازم نداریم چرا ملحوزه ملحوزه یعنی مد نظره یعنی باید بگردی به طور اجمالی بفهمی که بچه شبه چیست اگه گفته زهد شیره به چرخی ببینی منظورش از اینکه که شیره میخواسته مدش بکنه چه سفتی تو شیر هست که اینو بهش تشبی کرده میفهمی جورت بعد نگاه کنین هفت از تشبیه هو بلیق تشبیر بلیق کدوم ما غزفت منحو علعداد و وجه شبه من اونیه که عداد و وصل شبه با هم حذف شده این مبالغش بیشتره یادتون باشه اگه گفتن نه منظور یعنی بلاغتش بیشتر، یعنی مبالغش بیشتره قدرت تحکیدیش چیه بیشتر خب این درس ما حالا بیاد توی نمونه ها مثال ها خب چند تا مثال زده ایشون هشتا چرا هشتا مثال بده؟ اون معلوم برای هر کدوم دوتا درسته؟ یک و دو حالا یک و دو رو نگاه کن انا کلماء انا کلماء این رزی تو صفاهم این صفاهم به شکل تمیز اومده وشبه میگه من مثل آب میمونم آب دیدید یه جای مثلا یه استخدی باشه آب تمیز توش باشه شما یه دونه سکه تهمون استخد رو به شکل خیلی قشنگ میدین همه چیش رو ماهیایی که توش داره حرکت میکنه میدین انا کلمه صفا من مثل آب میمونم صاف زلغ کی ان رزی اگر خوشنود باشم اگه سر به سرم گذاشته نشده باشم مگسی نشده باشم پس انا دید داره یعنی من مثل آب زلال هستم منی که راضی باشم دلخور نباشم من راضی غیر دلخور آه؟ منی که راضی هستم و دلخور نیستم مثل آب مثل آب زلال هستم در پاکی سکی. یعنی سر به سرم نظارید. مثل آب زلاب. هر هرچی تو دلمه میبینید. هیچ سر به سر کسی نمیذارم، همه چی مشخص. اما و ازا ما سخت تو ما بعد از ازا زاید هست. و ازا سخت تو اما جایی که خشمتیم باشم. مگسی شده باشم. اذیت شده باشم. سر به سرم گذاشته شده باشم. و ما سخه تو کن تو لحیبا لحیب یعنی نار کن تو نارا اگه سر به سرم گذاشته شده باشه میشم آتش میسوزونم از بین میبرم برسته میسوزونم از بین میبرم سر به سرم بذارید دلرتون در میدون الان اینجا دو تا تشبیه هست تو این بیت یکی تو مثل اولی که شاهد مثال ده. انا مشبه ما مشبهان به کاف عداد تشبیه هست مرسل صفاان هست مفصل اما توی این مثل دومش نگاه کنید کنتو نارن این کنتو تا مشبهه این لحیبن نارن مشبهان به من آتشم خب معلومه آتش که نیست منظورش اینه که من مثل آتشم در از بین بردن خب عدات تشبیه و ودشبه چی شده حضر شده خودشو تشبیه به آتش کرده ولو آتش که نیستش که خودشو تشبیه به آتش کرده در از بین بردن اینجا شاید مثال ما این نیست چون این برای بلیق پایین مثال میزنه ولی بخواستم من بدونیم حالا این شاهر ما چرا اولی رو به شکل مرسل مفصل آورده دومی رو به شکل بلیغ خب اونجا مخواست توضیح بده که من وقتی دلخور نباشم سر به سرم گذاشته نشده باشه؟ مثل این آب زلالی هستم که شما همه چیدو توش میبیند روحفزان بعد این طرف مخواست مبالغه کنه گفته ولی اگه سر به سرم بذارید بپیر به پیغمبر پدرتون درمیارم من مثل آتش میمونم همه رو میسوزونم از بین درست شد کنتو لحی دورو نگاه کنید سرنا فی لیل بهیم یعنی مظلم مظلم یعنی مظلم یعنی تاریک مظلم سرنا سار یسی رو یعنی حرکت کرد حرکت کردیم فی لیلن بهیم در شبی تاریک که البهر رو انگار اون شب تاریک مثل دریا بود دریا مظهر تاریکیه شما شب اگر کسی در کلاد دریا بوده ها، یا توی دریا باشه توانی که ایچی نمیده که انهو البهر زلامن و ارهاب زلام یعنی تاریکی ارهاب یعنی ترسندن اخافتند. الان شبو تشبیه کرده اون ها... کارهای که برمیگرده به لیل اون شب تاریک تشبیه کرده این شب تاریک رو به دریا در چه چیز تشبیه کرده به دریا زلامن در تاریک بودن و ارهابند در ترسوندن ارهابن یعنی خب ترسوند در ترس ایجاد کردن و در تاریک بودن گفته مثل دریاز خب الان عدات تشبیه هست که نه وچه شبه هم دوتا هست زلامن و ارهابن بازه توضیح بده که این شب مثل دریاس از چه جهات گفته از جهت تاریخ بودنش و از جهت بگید ترساون بودنش این دو تا مثال مال مورد اول یعنی مرسله به گروه مفصل حالا بیاید توی متن متن این دو تا رو بخونم البحثو یوش ها شاعر رو نفسه به البیت اله اوله تشبیح جرد شاعر خودش رو در بیت اول بی حال لذا. در موقعی که خوشنود است و کسی سر به سرش نذاشته بل ما الهاده به آب زلال آرام که تکون تکون هم نمیخوره مثل اینکه که یک استخری آبش صاف تمیز هیچ بادی هم نمیوزه که شکستگی ایجاد بشه شما یه دونه سکه کوچک همون تشیر سوزن هم باشه میبینید في حال رضا بالماء الصافي على از, از وضو یعنی آرام نصیهان غضب هی و در حال خشمش که سر به سرش گذاشتن اوقاتش تلخ شده بی حال غضبی شده به نار خودشو تشویه کرد به آتش به نار الملتهبه آتش شعله و آتشی که شعله اش کشیده باشه او تشمیته منظورش چیه؟ منظورش اینه که فهوه محبوبم من آدم خوبیم محبوبم دوست داشتنیم اما به شرطی که سر به سرم نذارید مخوفم آدمیم که بگید ازم ترس به دل مردم میافته مخوفم دیگران میترسن ازم چه؟ موقعی که بگید سر به سرم بذارید و بخواهید عذیت کنید مخوفم اما ما کدوم رو مورد مثالمون بود؟ درست شد مورد مصره اولش شاید نوش دوم نیست وقیل مثال ثانی در مثال دوم سرنافی لیلن بهیم که اللهو البحرون ظلامن و ارهابن وقیل مثال ثانی شب به لایلو به ظلمته ولی ارهاب تشبیش شده شب در تاریکی و در ترسنگیزی به چی تشبیه شده؟ به دریا در این دوتا به دریا حالا و ازا تعمل که ات تشبیهین اگر شما به دو تشبیه نگاه کنید، گفتیم ستا شد کریم. میگه نه اذا تعمل تا ات تشبیهین فشترل در مصرای اول و مثال و ثانی و در مثال دوم یعنی اون که توی شطر دوم مصره دوم اون تشبیه بلیقه اونو کار بکشنه اون مثالش بعد اگر شما تامل کنید در دو تشبیه که در مصره اول هست و در مثال دوبان راید عداد تشبیه مذکورتن نبینه عداد تشبیه سکر شده به کل منحونا در هر کدوم از این کن و کل تشبیه توضی کر و فیه علی فیه علا عدادو یو و هر تشبیه که توش عداد سکر شده باشه میگ و اذا نظرنا الى تشبيهه مرات اخرى اگر یه بار دیگه برگردی به این دو تا تشبیه نگاه کنی یع ایت حمنا وجه شبه بوینه و خصلا پیهمون میبینی بچه‌وام توش تبیین شده بیان شده و تفصیل و توضیح داده شده و کل تشبيه نوز کر ویه و شبه با مفصلا و هر تشبیه که توش وجه شبه ذکر شده باشه بهش میگن مفصل یعنی توضیح داده شده همین را حالا بریم دوتا مثال بعد مثال سه قالب مر رومی، آقای ابن رومی اصلا به ابن رومی گن شاعر تشبیه تو تشبیه بسیار بسیار زبردست و دارای تشبیهات نوع است هست پایین نگاه کنید میگه البهیم المظلم یعنی تاریک آقای ابن رومی رو چی میگه میگه هو از شاعر و المشهور و صاحب النظم العجیب و تولید غریب شاعر مشهوری است کسی است که شعرهای عجیبی داره و نوآوری های غریبانه ای کسی تا اون کارها رو نکرد. تولیداتش غریبه نظم و شعرش عجیبه. کان اذا به معنی لایت رو کهو حتی یستوفیه آقای ابن رومی اگر یه معنا و مفهومی رو ذکر بکنه بیاره توی عبارت خودش ولش نمیکنه تا حقش رو عدا کنه حتی یستوفیه استوفا یعنی تمامش رو گرفت استوفا حق او یعنی تمام حقش رو استیفا کرد یعنی همه رو گرفت پس اگر یه معنا و مفهومی رو در شعر خودش بیاره ولش نمیکنه تا حق مطلب و عدام کنه و قد توفی سنت معتین و سلاستن و سمانین معتین و سلاستن و سمانین سال دوی ساشت دنیا رفته هجریتن و قد توفیه سنت معتین و سلاستن و سمانین هجریت اینم مال آای ابن رومی. ببینیم چی گفته میگه ابن رومی در تأثیر قناع مغنن در تأثیر و اثری که آواز یک آوازخان مرد بوده یک یک آوازخانی یه نفری که خوش صدا بوده و آواز خوب میخونده او آوازی خوانده در تأثیر آه... در تأثیری که این آواز بر شنونده میگذاره این آقا توصیف کرده خواستن به من میگفتن مثلا فرض کن که این آقا شعر خوند تأثیرش که تو شعر باقی که شعر میخوند اینه این ببونه که مثلا فرض یه نفر تشنه تشنه هستش خیلی تشنه یه یک آب تگری خوب بدی دستش مخالی چه کیفی میکنه شعر اینم یه نفر میشنوه اینطوری خب اما یه چیز دیگری تشبیه کرده برای اینکه تاثیر اثر آواز او رو نشون بده یه تشبیه خیلی باشنگی کرد یه تأثیر غنا غنا یعنی آواز آواز خواندن مغنن یعنی کسی که مغنیست آواز است. والا چی میگه؟ نگاه کن. میگه فکأن لذت صوتی و دبیبه ها لذت که لذت بردن دبی مستر است دب یعنی آروم خودشو کشید رو زمین راه رفت مثلا میگن دبت لحیتو دبت نملتو مار راه چون آدم میخزه میره نمیبینه که مثل صدای پا نداره دبت نملتو مورچه را میره آدم نمیشنه بید. اصلا دبابه به چی میگم به تانک دارم که خود میکشه به زمین دید درست شد این دبیبه ها هاور میگده به لذت میگه لذت صدای این آقا و آروم آروم وارد شدن این لذت توی جان شنونده. اولش که شروع میکنه هنوز یه مصره خونده انگار مثلا یه سیسی لذت به بدن او زده شد مصره دوم دو سیسی بیت دوم، چهار سیسی همین هی لذت به او تزریق میشه میگه لذت صدای او و آرام آرام وارد شدن این لذت به جسم شنونده مثل چی می‌مونه؟ مثل سنتون مثل یه چرد تمشا تمشا بوده تتمشا یکی از تغاش هز شده باب تفاول تفاول تفاول تو دون نظاره. معلوم اگه دوتا تا جمع بشه یکی شایزه ازشون مثل تن از که تو این تمشا تتمشا بوده اگه ماضی بود میشه تمشت چون زمیر هیه بود برمیگش بسند این تتمشاست میگه مثل چورتیه که تمشا یعنی تتمشا تمشا یعنی یواش یواش تمشای تو یعنی بیاد روی آروم کردن مثل چردیه که یواش یواش یواش وارد میشه فی مفاصل در مفصل و اعضا و جواره ناعس ناعس جمع ناعسه یعنی آدم خسته چردی آدم خسته با بگید چردی گوش کردی چی گفت میگه یه نفر هست آدم مثلا این فرق میگه یه روز رفته سر کلاس و از صبح تو کلاس نشسته رفته آمده با اتوبوس ها این از صبح زود که رفته الان که قروب قصر آمده شب رسیده خونه این با خودمون آب و چایی خورده و یه نون خورده خستگی تو همه مفاصلش نشسته این یه چورت میاد سراغش. این چقدر لذت داره براش؟ یه چورت میزد دو سه ده ثانیه بعد بعدی بعدی می می چورت بعدی می میشه 20 ثانیه ای چورت بعدی میشه نیم ایت سرش کج میشه چورت میزد بعد یه نفر میاد یه متقابش میده میخواه میره تو لذت کار چقدر این خواب براش نزیزه چقدر لذت براش میگه این همین شکله مصره اوله که میخونه مثل چرت چورت اوله مصره دوم مثل چرت دومه هی hey, میره جلو میره جلو وسطاش که میرسه مثل کسی که راحت خواهی دران داره کلیف میکنه خود را فش بلند شد اینم همون داره یک صورت به قول خودمون درک کردنی لذتی که آدم از صدا میبرد رو تشبیه کرده به یه صورت حسی که انسان از چورت و خواب به دست میاد. الان کهنه هست عداد تشبیه مشبه هم لذت هی و دبیبه ها این مشبه به. لذت صوت سوت و وارد شدن آروم آروم هم. این مشبه مشبه هم به سنتون چورتی که وارد مفاصل آدم خسته میشه اینم مشبه هم به چه شبه چیه وچ شبح عبارت است از آرامش یافتن وچه شبح عبارت است از بگی آرامش یافتن یعنی طرف آرامش کامل پیدا کن و لذت بردن وچه شبه الارتیاه وقتی دقت کنی بین این دوتا ارتیاه یعنی ارتاها یعنی راحت شد و تلزز لذت بود ارتیاه و تلزز نچه چه به زرک نشد شما از عبارت بخونید میفرد نگاه کنید از سنه میگه یعنی چه این شعره هم دومی میشه ببین و قال ابن المعتز ابن معتز خلیفه بود شاهر بود خیلی هم مدت خلافتش کم بود از این قابل ذکر است به قول خودمون شانس در خلافت نداشت از خلافای عباسی و وکهن داره این بیتو رو میدید خورشید رو نمیدونم شما حتما دیدید مثلا تو بیابون باشید یا کنار دریا باشید خورشید رو به هنگام صبح ببینید در مشرق یا به هنگام غروب ببینید در مغرب خورشید رو چطوری میبینید؟ به شکل یک توپ زرد خوش صبح که طلوع میکنه وایسی به خورشید نگاه میکنید مثلا کنار دریا باشید خورشید انگار رو تو دریا میاد بیرون نگاهش میکنی چشمت هم نمیزده زرد زرد نگاهش قروب هم که داره قروب میکنه نگاه میکنی به خورشید میره پنگ درد در قداری در خورشید رو نگاه میکنی هیچ چشمت هم نمیزده خوش رنگ زرد میره تو دریا پایین یا میره تو بیابون یا میره پشت کن در که همه خورشید اگر مثلا الان کسی تو آسمون نگاه کنه ساعت 10-11-2-3 نگاه بکنه کورش میکنه چطور میشه اون موقع؟ اون موقع به دلیل اینکه نور خورشید متمایله و فاصلهش زیاد شده چشم بگید آزار نمیره اما موقعی که عمود باشه یا مایل بودنش کم باشه چشم آزار میبید ایشون درست شد خورشید رو داره به هنگام غروب یا طلوع بیان میکنه اگه به ما میگفتن خورشید مثلا هنگام غروب یا هنگام طلوع به جایی مثل زردے تخموم اما ایشون چی میگه میگه کأن الشمس المجدیره از شمس یعنی این خورشید این خورشید درخشان عن الشمس المنيره صفت دینارون انگار یک سکه تلاس دینار سکه تلاس درهم سکه نقره است میگه انگار دیناری خورشید به هنگام غروب مثل بگید دینار سکه مثلا به حال آزادی سکه طلا اما نگاه کنید این سکه ها قبلا به قول خودمون واحد پول بوده یعنی سکه طلا یه به قول خودمون مثل مثلا یه پولی که ما یه چکه ایران چک 50 هزار تومن هزار تومانی داریم اونم واحد پول بوده خودش ارزش داشته الان کاغذه ارزش نداره اعتبارش ارزش داره شو. اون واقع نه این خود سکه ارزش داشت ولی دینارها دست به دست می شده اولش که اینو ضرب می کرد اون تلاساز خب اولش که ضرب می شد خیلی خیلی روشن بر مثل سکه بحار آزادی که تازه بری از بانک مرکزی بیگیر روشن روشن ولی سکه اگر مثلا دست کسی باشه این به اون بده اون به این بده اون به این بده بعد از مدتی که در می شه. مثل این پول ها هستن الان پول خورده که سکه هایی که حالا مثلا ما داریم خب پولا پول ها اولش که در اومده بود مثلا 500 پونسد ها این اولش چقدر سفید و برها بعد یه مدت که این راننده میگیره اون میگیره اون میگیره می این میذاره چی به شون یکی تو داخلش، بعدن نگاه میکنی چرک شده؟ میگه این خورشید روشن مثل دیناره اما دیناری که جلد خل. جلا یجلو یعنی جلا داد سیغل کرد جلد خوا هداید و زراب هداید یعنی حدیده کردند آه سنبات زدن زراب یعنی اون کسی که سکر رو زرب میکنه جلا داده اونو سنباده های بگید اون سکه زرب کن یعنی چی؟ یعنی مثل دیناریه که تازه از دار و ضرب از بانک مرکزی اومده بیرون تازه سیغلش کرد یعنی هنوز دست بگو نخورد چرا مشبهم هم بگو قید زده به دیناری که تازه هست و دست نخورده واسه خاطر اینکه که وچه شبه که اشراق درخشندگیه کاملا توش بگید مشخص باشه نینارون جلد خوریم جلد خوریم جلد خور صفت نینار جلد خور یعنی سقلت خو و زراغ الازیت و اون اونی که سکه ها رو ضرب میکنه خب الان شما نگاه کنون خورشید رو تشبیه کردیم ما به دینار تازه زرب به دینار بگید تازه زرب اون خب وحش شده چیه؟ وحش شده سردی و بریغه بریغ یعنی درخشندگی این زرد بودن و درخشنده بودن ها؟ توی این دینار تازه زر خیلی مشهوره همیشه تو دست مردم دیدن فلان جور چششونه خورشید را گفته مثل دیناریه که مثل سکه راه آزادیه که تازه از بانک مرکزی گرفت این دو تا هم دیدید حالا نگاه کنید یا توی بحث و یوسف ابن الرومی فیلم سال سالسه سال حسن صوت مقنن زیبایی صدای आवाज رو و جمیل ایقای ایغاه یعنی ریتم و زیبایی ریتم اون آقا رو و زیبایی صدای اون آوازخون و زیبایی ریتمش رو اومده چکار کرده؟ یسف ابن رومی اینو داره توصیف میکنه حتی که ان لذت هی تصریف جسم، جوری که لذت صدای او یواش یواش سرایت میکنه در جسم انسان کما تسلي اوائل النوم الخفيف همونطور که سرایت میکنه اوایل یک خواب سبک این چورت فیه در جسد ولکن نهو لمی از گروزشا شده ولی مرشوا ذکر نکرده چرا معتمدن علو اندکه تستفی و ادراک هو به نفسه به جهت اینکه اعتماد کردی که تو ورش شبه بین این دو تا رو خودت میتونی دیگه بفهمی اجمالا ذکر کرده ملحوظه ملفوظ مسته. چیه و هول ارتیاه و تلزز و اون بچه شبه عبارت از ارتیاه یعنی آرامش یافتن و لذت لذب خیلی حال این درداتان خب در دومی در دومی که چورته باشه خیلی ملموسه آه مشهوره اینو تشبیه کرده بره. و یوشدوه ابن الموتز از شمسه اینه خرشید رو به هنگام صبح خودا قروب هم باشه همین اینجا به هنگام صبح تشبیه کرده به دینارن مالوان ناشته و دینارن قرد. اون باید بشه با و یوشب رو ابن الموتز از شمسه اینده شروع به دینارن مجلوبن به یه سکه دیناری که پول تلایی که مجلوبن جلا داده شده سیغل داده شده قریب عهد هو به دار الزرد و تازه بگو از دار و از اونجایی که سکر زرد میکنن در من. و لبی از کل وچه شبه هیزند باز وچه شبه رو ذکر نکرده کدوم و حوول اسفرار و ولبریق عبارت است از زردی و درخشندید و یوسم ماها زن نو اومنت و این نوع از تشبیه رو چی بش میگن؟ و همان نزیلم لم کردیه فیه و شبه که توش و شبه از یک نشوده بهش میگن هم مجمل تشبیه مجمل چرا چون وش شبه به طور مفصل روشن ذکر نشوده ما باید تو عبارت دقت کنیم تا اون رو بفهم. حالا سه تا مثال بعد دو تا مثال بعدی رو که درس سومه نگاه کنید 5 میگه الجواد و الفلام داره الفلام تعریف عهد جواد تو زبان عربی دوتاست یه جواد داریم که جمعش میشه اجواد از جود یعنی کرم جواد یعنی بخشنده اجواد اول یعنی کرمای عرب از جوده یه جواد هم داریم از جوده هستش که جید و اینا از اونه اون جواد جمعش میشه جیاد جیاد که جواد بوده واقع لب شده جیاد درست شد اون اسب خوبه درست شد یا نه اینجا منظور اسبه میگه الجوادو ترجمه اش میشه این اسب عصب خوب از نشون داده این اسب خوب برق خاطر برق گزراست آسمان دیدید رعد و برق میشه برق از و آسمون میره به اون طرف آسمون سریع خاطف یعنی گذرا که آدم تا چشش رو بلند موکنیاین رفت خوب این اسب مثل برق میمونه برق گذرا این رو تشبیه کرده به برق آسمون برق گزرا یه لحظه میزنه و میره به سرعت برق حرکت میکنه در چه چیز تشویهش کرده به برق به سرعت در سرعتش الان نگاه کنید اس تشبیه شده این اس به برق اما اعاده تشبیه نیست خب یعنی از یک شده سرعت گفته این اس مثل برق است در سرعت مثل برق است در سرعت اما مثل نگفته گفته این اس برق است در سرعت برق گذرفت شیشو نگاه کنید انتا نجمون داشتی یکی رو مرد بکرد انتا نجمون تو مثل ستاره ای اما نگفت مثلو. رو گفته تو ستاره ای خب معلوم منظورش اینه مثل ستاره ای. وله منظورش نیست که تو ستاره ای و جاد تو هاسمونه انتا نجمون فی رفعتن و زیاء تو مثل ستاره ای در چی؟ در بلند مرتبگی و درخشش دو تو بچه در این که بلند مرتبهی که میتونه مثل تو بشه؟ و در درخشش که میتونه مثل تو درخشنده باشه؟ در نورانیت و بلند مرتبهی تو ستارهیه. خب، یعنی مثل ستاره. تجتلی کل و ایون و شرغن و غربن. اجتنا یعنی نظره. تجتلی کل و اویون یعنی تنظر و الای کل و ایون. کل یعنی چشم ها تجتلی کل اویون یعنی تنظر و کل اویون همه چشم ها به تو نقطه شده تو رو نگاه میکنن و غربا یعنی فی شرق و غربن در شرق آلم و غرب آلم مثل مثلا ستاره الان تو آسمان باشه اونی که مثلا در کره جنوبی هستش که شرق آلم هستش اون این ماه رو میبینه ستاره رو میبینه اونی هم که مثلا در کانادا و امریکا هستش قرد اونم هم ببینه همه نگام کن بیه آسمانی میبین. خب معلومه اونه که وسط هم هست که مثلا فرد کن ما باشیم و همی یعنی در تمام سطح کره زمین از شرق و غرب همه چیزشون به تو دختشونه تو در درخشندگی مثل ستاره آسمانی تو در بلند مرتبیگی مثل ستاره‌ی آسان. خب خیلی راحت او اون کرد که اله اونو شرقن و قربن دلیل تشبیه شده رو بیان میکنه ولو بچه شبه رفعتن و زیاد تجتلی که گفتم یعنی تنظر و اله خب این دوتار هم دیدیم حالا نگاه بریم تو مد میگه وفل مثال خامسه و سادسه شبه ها الجوادو به برق سرعت تشبیه شده اون از به برق به برق آسمان در سرعت ون ممدوح شبه هل ممدوحو به نجب اون ممدوح که انت گفته بود تشبیه شده به ستاره به رفعت و زیاد اما منقید توز کرده عداد و تشبیش بدونه که عداد تشبیش زید شده باشه فیکرم تشبیم. در هر دو تا تشبیش ها عداد تشبیش نیمیدیم و لز و زالکن تحکید دا حالا چرا بیا از کرد؟ میگه به خاطر اینکه ادعا بره بالا اگه میگفت تو مثل ستاره هستی یعنی خودش نیستی مثلشی مشابهی اما وقتی میگه تو ستاره ای ادعا اینه که انگار تو واقعا ستاره ای که چه مد نظره چون او ستاره نیست ولی در ظاهر ادعا اینه که انگار تو واقعا ستاره ای به تحکید ادعا به اندل مشبه هم این اون شده این ادعا که مشبه عین مشبه به مشابهش نیز خودشه و هازن نوع یوسن ما تشبیح هم این نوعی که توش عداد تشبیح هست شده بش میگن تحکیده تشبیه معکد چون تحکیدش بیشتر اما بیاید توی دو مثال آخر افت و 8 و قالل متنبی جناب آقای متنبی گفته و قد اعتزم از سیف دولت سفران و واله است و حالا که سیف دوله اعتزم از سخت قزد کرده بوده کاملا قصد کرده بوده چی را قزد کرده بوده سفران رفتن به سفر سخت تصمیم گرفته بوده سیف و دوله بره سفر متنبی سیف و تو حلب امیر حلب بودی تو سوریه خیلی دوستش داشته خب متنبی دیده سیف و دوله میخواد بره مثل مثلا یه مادری که ببینه حالا تشویح داره میکنه بچهش داره میره مثلا ورکون کن بازی داره میره جنگ در صفاشو گم میکنه متنبی هم دیده سیف و دوله داره میره سفر سفرش هم سفر جنگ بده دیگه و یال و کپال رو همه رو جمع کرده بود لشکر آماده داره به طرف جنگ و اگه اومده اینطوری گفته باش اینه از مهت از مهت یعنی سممت یعنی قصدته عین از مهت کجا قصد کردی بری کجا میخوای بری اینه از مهت ای ده. هازل همان یعنی یا ای حاضر همام همام یعنی پادشاه بلند مرتبه توی این راژیو تلوزنگاه یا آن امام همام همام یعنی بلند مرتبه از این مشتن نمیدونن همام چیه عربیه درست پس این از مرتبه کجا میخوایی بریم ای پادشاه بلند مرتبه اینه واسه چی سوال کرد؟ دست پاچه کن کرده کجا میری کجا میری ای بلند مرتبه ای از این کجا میری؟ چرا چرا ما دست و فامونو گم کردیم مییم کجا میریم میگه نهنو و نبت و روبا روبا جمع ربوست یعنی تپه وبا جمعش نحن و وبا ما گیاه بالای تپهیم و همتل قمام قمام یعنی عبر و تو عبر و آسمان دوتا تشبیه ها ببین گیاه اگر پایین توی دره باشه خب معمولا با شما توی درله ها هم آب میبینید هم گیاه میبینید یه زن هم ریشش میره پایین به آب میرسه چون آب از بالای کوه میاد توی این پایین توی دره جمع میشه اما اگه یک گیاهی بالای کوه باشه خب بالای چی؟ کوه باشه بالای تپه باشه این گیاه راهی برای زنده ماندن نداره جز ابر آسمان چون هر چقدر ریشش رو بفرسه پایین چقدر بفرسه پایین تا بخواد به آب برسه نمیشه امکان نداره آب نیست تنها آبی که میتواند او را سیراب بکنه و زنده است به آن عبره بگید آسمان آب بباره این باران باعث میشه و حیات پیدا کنه زنده من. عبر نباره خوش بشه پس گفتیم با مثلمون گیاه بالای تباییم یعنی فقط به تو زنده ای و تو هم مثل ابر آسمان هستی فقط تویی که میتونی مار زنده نگه ما رو زنده نگهده ما امیدمون به غیر از تو امید به کسی نداریم حالا تو کجا داری میری؟ تو که همه امید ما هستی خب این نهنو و نبتر روبا یعنی چی؟ یعنی نحن و ما مثل گیاه بالای تباییم در چه چیز مثل گیاه بالای احتیاج در احتیاج انتل غمام یعنی انتکل تو هم مثل عبر آسیمان هستی در چه چی چیز؟ در برآوردن حاجت ما زنده نگه داشتن نگاه کنید میگه ازمه تا یعنی ودتد تا ازمک ازم خودت رو سرد کرد و روبا الارازل عالیه سرزمین بلند ارتفاع قب اینجا چون مبالغه می‌خواست بکنه دیگه بگه ما ای محتاج محضی و تو برآورنده ی حاجت محض ما هستی غیر از تو کسی نیست جای مبالغه بود از چی استفاده کرد از تشبیه بلی قال المرقدش آقای مرقدش یا مرقش خب که از شعرا جاهلیست این, بود. این شعر رو این هم تو غزنه اون تو مده بود این تو غزن و غزل هر دو جای مبالب است. آقای مرقش میگه ان نشرو مسکن ان نشد الفلامش عوض از مضافانه نیه یعنی نشرو نشر نه یعنی بوی خوش اون الفلام عوض از مضافله یه یعنی بوی خوش این محبوبه من و همراهانش محشوقه شو بیده. بوی خوش این محشوقه من و همراهان او ان رو کن بوی خوش اینها مشکست یعنی بوی خوش اینها بوی خوش مشک گفته بوی خوش اینها مشکست یعنی مثل مشک دیگه در دل افزایی ول وجوه یعنی و وجوه ها نه و صورتهای اینها این معشوق من و همراهانش که در بین زنان قبیل است و وجوه دنانی رو دینار گفتیم سکه تلاست صورتها مثل دیناره یعنی درخشنده خوش رنگ ها صورتها هم مثل دینار گندنگون و کشلنگ و درخشند صورتهاشون مثل دینار و اطراف العکف اطراف جمع طرفه یعنی کناره اکوف جمع کفه یعنی همی کف دست اطراف میشه کنارهای دستان اینها اطراف العکف یعنی اطراف و اکوفهن خب کناره دست میشه سرانگشتانه و اطراف العكفه و اطراف عكف و کناره های داستان اینها یعنی سران گشتانشون عنمه عنم یک صبری مثل, مثل مثلا اناب مثل این زغالخته این تیپیه برست شد؟ مثل سنجد این در جزیره العرب هست خیلی خوش تنگ مثل زغالخته میمونه میگه سرنگشتان اینها مثل زغال اختست مثل اننابه خب؟ از چه جهت گفته؟ از جهت اینکه که اینها سرنگشتانشون رو بگید ناخنه ها رو و سرنگشتان خودشون رو هنها میگذاشتن. این انگشتان لطیف و هنها گذاشته اینها سرنگشتانشون رو مثل انم میمونه نشوهاش میگه پس موی خوش اینها مثل مشک میمونه و صورتهای اینها مثل دینار میدرخشند و کناره های انگشتان اینها سرانگشتان اینها مثل انم میونه مثل این گیاه هست در خوشرنگی و درخشد پایین میگه ان نشر ار رائحه ول انم شجر لهو ثمر احمر درختی که میوهی سرخ داره یشب به به البنان المخضوب تصویر میشه به ثمر اون سرانگشتان مخروط این شعر شاعر جاهیلی است و این شعر هم در جاهلیت گفته در مورد زنهایی که معشوقهاش بود معلومه اون زنها در جاهلیت زنهایی که حر بودند زنهایی که جزء شخصیت‌های زن بودند و کنیز نبودند و زیره حجاب داشتن حالا این ببینید بوی خوششون رو تشویر کرده چون بو متساعد میشه دیگه این بوی خوش میاد و یعنی بعد صورت‌های اینها رو گفته صورتشون رو و بعدا از سرانگشتانشون یعنی در واقع به نوع اینها پوشش کاملی داشتن حالا نگاه کنید میگه و فی مثال ساده یسأل یس المتنبی ممدوحهو در مثال هفتم سوال میکنه متنبی از ممدوح خودش فی تظاهرن بزور و الهل در حالی که تظاهر داشته میکرده به ترس و استراب حلق. با ترس و استراب داشته تظاهر میکرده دست و پاشو گم کرده بوده قایلن اینطور طور میگفته اینه ترسوت کجا میخوایی بریم و کهی فتر حلواننا چشوری دلت میاد از پیش ما بریم و نهل الله نعیش و الله بک در صورتی که ما زنده نمیمونیم مگر به تو ما بدون تو میمیریم کجا میخوایی بریم چطور دلت میاد بریم این کاری میگفته نه انکه کل غمام لذی یهی العزب بعد موتها زیرا تو مثل ابری هستی که زمین رو زنده میکنه بعد از اینکه اون زمین مرده و نه رو الذی نبت لا حیات لهو به غیر الغمام و ما مثل گیاهی هستیم که بالای است و هیچ حیات و زندگی نداره مگر با عبر آسمان و بیت الاخیر یو شب به هر را نشته. در بیت آخر هم تشبیه میکنه مرقش بوی خوش محکوبه و همراهانش رو و خوبا تیب و رائحت من یسف و اون بوی خوش است که داشته توصیفشون میکرده گفته بلمسک تشبیل کرده بلمشک ولی وجود و صورتهای اونها را بدنانید ول انا مل المخضوبتا بل, بل انام و سرانگشتان خضاب شده اونها رو تشبیه کرده برنم و ازا تهمب در حاضر تشبیهات و اگه تو دقت کنی این تشبیهات رو رعی تهمبه نوع تشبیه محکد میبینی این از نوع تشبیه محکده یعنی عداد تشبیهش هست شد ولیکن نها جمعت الى حسف الى عداده هست و وصف شبه ولی این تشبیه جمع کردن همراه آوردن به غیر از و اعداد حسب و شبه را هم یعنی غیر از اینکه که مجمل هم هستن خب حالا بهش بگیم که محکد مجمل نه نه نه بهش میگه تشبیه بلی محکد مجمل گفته نبشیم حالا چرا حداد تشبیه وقت شبه هر دور رو حصف کرد؟ میگه مخواست نهایت غرفت بشه نهایت تحقیق بشه مبالغه بشه و که لعنر متکلم امده ای لر و اغراق. امده یعنی قصده این به اینه که متکلم قصد کرده مبالغه و اغراق رو ادعای در این که ادعا کرده امده ای اول مشبه و به نفسه دیگه نگفته که زیگ مثل شیره گفته خود شیره مبالغه کرده در این ادعا ادعا کرده که مشبع عین مشبهون ده لذاذکه احمل به خاطر همه اداتو گذاشته کنار اداتو انداخته احمله یعنی ترکه ترکه ترک کرد اعداد رو الاتی تذل و علا ان از عفوی و چه من منر چون ادات تشبیه که میاد میگه مثل اینجا معلوم میشه مشبع ضعیفتر است از مشبه اگه بگیم این مثل سیبه ویه همه میفهمن یعنی سیبه بالاتر اینا مشابهش و احمدن ذکر بچ شب بچ شب هم ذکر نکرده چرا چون اگه بگید این مثل سی و هست در نحو ها میفهمن فقط تو نحو مسئله ولی وقتی حسابش میکنی طرف احساس میکنه این خود سی و تو همه چی این ادعا فهمیده میشه مبالغه میشه و از ذکر بچ شب الضی ینم یعنی, یعنی ما یعنی سخن چینی میکنه بیان میکنه ذکر وچه شبه وچه شبهی که بیان میکنه از اشتراک طرف فی صفت و صفات این دونه غیران حالا یه صفت دوتا صفت وچه شبه که ذکر میشه معلوم میشه تو چه چیزی مثل اونه ولی وقتی حرص میشه حداقل از در ظاهر اینطور آدم احساس میکنه یعنی در همه چیز مثل و یوسن ماها زن نوعو به تشبیه البلیق این رسمو بهش میگن تشبیه البلیق و خوبا مذهرون من مذهل یعنی پدیده این پدیده است از پدیده های و میدان فسیح و یک میدان بازیست است لتصاب و المجیدین برای مسابقه دادن خوبها درجه یک ها من میره و ولکتاب از شاعران و نویسندگان یعنی شاعران و نویسندگان اینجا خیلی حسب چرا؟ بدن که مبالغه توش بگید خیلی زیاده و شاعرها و نویسندگان هم مبالغه جزء ذات کارشونه مثل همین شعر آقای مرقش مثل شعر متنبی یا مثل اون شعر اول کنتو لهیبا قصد مبالغه توش زیاده و برای اینکه مبالغه کند از این نوع از تشبیه استفاده میکنه اما بیان سر نموزج دیگه چندین بار تکرار کردیم و نموزج رو شما ببینید نگاه کنید نموزج چهار رو میخونم خب. اول که میگه علا آلمو یعنی شخص عالم یعنی کسی که آلم علا سراج سراج محرب چراغه چراغ فارسی به عربی دفته شده سراج محربه کلمش. چه چهسی گذاشتن و در این روجیم گذاشتن از روش این ساخته شد درست شده میگه ال سراج سراج امته شخص عالم چراغ مردمان خودشه آیا واقعا قصدش اینه که عالم چراغه؟ یعنی فیتیله داره نفتوش کبریت بهش میزنه این نیستش که یعنی مثل چراغ در چه چیز مثل چراغه چراغ گرمان میده میگه فل هدایت و تبدید زلام در هدایت کردن مردم مثل فانوس میمونه در هدایت کردن مردم و تبدید بدده یعنی فررقه پراکنده کرد و تبدید زلام پراکنده کردن تاریکی ها از بین بردن تاریکی ها پس در هدایت مردمان و در از بین بردن و پراکنده کردن تاریکی ها چطور چراغ این کارو میکنه یه نفت و تاریکی چراغ دستش میگیره جلوش روشن میشه حرکت میکنه و راهشو پیدا میکنه این عالم هم همینطوره مردم را به منسر منزل مقصودشون میرسونه و در واقع روشنایی براشون ایجاد میکنه و اونها حق با از باطل میفرد خب الان اینجا عدات تشبیه نیست یعنی گفته که سراج خب عدات تشبیح میشه محکد ولی وچه شبه هست فلحدایت و تبدید زلام فلحدایت و تبدید زلام این هست میشه مفصل نگاه کنی ببینید چی گفته میگه عالم تشبیه شده به سراج مفصله چرا محکد مفصله؟ خوزفت العداد پس شده محکد و زکر و شبه پس شده نفس سه نگاه کن زرنا زرنا زاره یه یعنی دیدن کرد ملاقات کرد زاره یعنی زیارت کن زرنا حدیقتن حدیقه یعنی باق ما یک باقی رو دیدن کردیم که جمله بعد از نکره میشه صفت باقی که همچوب الفردوس فردوس اسمی بهشت مثل بهشت بود ما یه باقی دیدیم مثل بهشت در چه چی چیز مثل بهشت بوده فلجمال در زیبایی و البحاق بحا نمه منه عرضش من بحا فارسیه تا با مد آخرش شمزه این به معنای زرق و برغه رونق در زرق و برق و رنگ و لآاب و در زیبایی مثل بگید بهشت بود خب خوب اون باغر قشنگ توضیح بده واقعی که دیدن چون میخواست توضیح بده حمد ادرسش آورده هم و شلوار گفته مثل بهشت بود چطور بهشت زیبایی در بهشت مثل بهشت بود در زیبایی و مثل بهشت بود در زرگ و برگ و رنگ و را نگاه کن از زمیر فی او ال آهید علا لحدیغته درست شد این بگو مشبه الفردوس مشبهون به مرسل مفصله چرا؟ چون ذکر از الاداد و وچو شبر هم وچو شبر فکر شده هم عدد. اینجا یک غلط مال من نوشته نوشته از زمیر فی که اللهو باید نوسته فی که اللها چون حدیقه معنیس دیگه تو شعر آمنه. این قلط رو دوزشت. از زمیر و فی که اللها حلا آید علال حقیقته فردوس مشبخون به عدات تشبیه و بچه بزده شده مرسل مبسل نگاه کنید تمرین دوم نموزج دوم وصف ععرابی اعرابی جمعش اعراب که دو قرآنم داریم قالت العرب و آمنلا ععراب جمع اعرابی ععرابی یعنی یه عرب بادیه نشید یک عرب بادیه نشین کوچ نشین پس وصف اعرابی یعنی یک عرب بادیه نشین کوچ نشینی توصیف کرد رجلت یا آقای یه بادیه نشینی یا آقای توصیف کرده فقانه اینطور گفت که ان انه ها ظاهر این آقا درست شد مثلا این زید روز روشن است ظاهر یعنی تابان این مثل روز تابان است و القمر الباهر مثل ماه باهر است باهر یعنی غلبه کننده بر همه چیز ماه که میاد همه ستاره ها میکشن افرد هیچ ستاره دیگه توان مقابله با ماه رو ندار ماه قالب در مورانیه مثل ماه شب چهارده بلقمر بله باهر اللذی لایخ با علا کل ناظر ماه شب چهارده ای که و چشم هیچ بیننده ای پنهان نیست اگه ماه ماه اول باشه روز اول دوم سوم خوب خب ممکنه کسی زود پنهان شه. خیلی ضعیف باشه نبینه اما ماه شب چهارده رو هر کسی میبینه خب اینجا این آقا تشبیه شده یه بار به نهار ظاهر، یه بارم هم تشبیه شده به قمر باهر درسته که همه میبیننش ماه تابانی که بر همه آشکار است. در هر دوتا یعنی یه دونه مشبه داریم اون آقا دو تا مشبه هم بهتریم یکی روز روشن یکی ماه تابان. در هر دو تا عداد تشبیه هست ما عداد تشبیه میبینیم اما وچه شبه زک نه تشبیهش کرده به روز وچه شب گفته که روز مخفی نیست اینم مخفی نیست و هم نه بگید ماه به ماه تابان تشبیه کرده در چه چیز؟ در اینکه که آشکار پنها نیست. نکرد. نگاه کنید میگه مدلول و زمیر. یعنی مرجع زمیر. اونی که زمیر براش دلالت میکنه فیکر یعنی اون آقا یه بار تشبیه شده به نهار ظاهر یه بار هم تشبیه شده به دمر واهر. هر دوتا مرسل مجمله. مرسل چون که انده تشبیه ذکر شده. مجمله چون وچه شبه ذکر نشد زکرت العداد و لم یوز کر وچه شبه زکرت العداد و لم یوز کر وچه شبه حالا مثال اول متنبی در مده کافور اخشیدی گفته کافور اخشیدی پادشاه مصر بود وقتی متنبی از سیف دوله ناراحتی دید و با او قهر کرد رفت به مصر کنار کافور اخشیدی که رقیب به بود و کافور اخشیدی رو مات میکرد بعد دوباره برگشت اومد بشه سیفر به کافور میگه ازا نلتومن کرد الوده الوده یعنی وده کرد ود یعنی دوستی ودود یعنی دوست دوست خیلی خوب بدون نل تو یعنی نائل بشم نال ینالو یعنی به دست آورد اذا نل تو من که ده. یعنی ود کن ترجمه میشه چی؟ هنگامی که دست یابم من از تو هنگامی که به دست بیارم من از تو مهربانی تو دوستی رو، لطف تو یعنی من باید کاری بکنم دل تو رو به دست بیارم تو با من باشه من باید دل تو رو به دست بیارم مهربانی تو رو به دست بیارم فن مال و حیانم. پس مال اون موقع دیگه ساده است هین آسانه تون تو که اگه کسی رو دوست داشته باشی مگه میذاری با حال خودمون تنگ دست بشه مگه میذاری من باید سعی کنم که رفاقت و دوستی تو رو به دست بیارم ما مال دیگه جلوی دستم مال دیگه خیلی مهم نیست های اینا. از هوانه مال دیگه عرضشی بگیر نداره یعنی من نباید شعر بگم تا پول از تو بگیرم من نباید بقول خودمون به تو نزدی پیشم تا از تو سله بگیرم من با سعی کنم دل تو رو به دست دارم دل تو که به دست بیارم همه چی دارم فلمال و های یهنون جواب دلیل میاره پس میگه اونی که مهمه دوستی توه نه ثروتی که تو میدی اون خیلی چیز نیست برای من میخواد بگه من خیلی چشم سله های تو ندوختم من میخوام دل تو رو کسب کنم دل تو رو به دست بیارم بعد میگه و کل الذی فوق قد ترابه, ترابه این یعنی زیرا استیناف بیانیه و اول خودمون چرا میگم من باید دوستی تو رو به دست بیارم مال خیلی چیزه به درد بخوری نیست چون کل لذیفه و وقت تو رابطه تو تراب. چون هر چیزی که روی این خاکه از تراب یعنی این زمین هر چیزی که روی این خاکه خاکه یعنی چه خاکه یعنی بی ارزش چون هر چیزی دیگری در این دنیا هست آ بی این گفته خاکه یعنی مثل خاکه چون هر چیزی که روی این زمینه که خاک نیست که سکه و درهم و دینار و حسب و اونه و اینا میگه همشون مثل خاک میمونن بی عرزش هم. اونه که ارزش داره محبت و کل <سؤال> کلالنزی مشبهه. ترابون بگیرد. مشبه هم بهه. در چه چیز همه اونهایی که تو دنیا هست مثل خاکه؟ در چه چیز اونها مثل خاکن؟ در بیارزش بودن. بی اهمیت بودن. همهشون شون مثل خاک بیارزش هرچه در این دنیاست خاک است ارزشی بگید نداره. اینجا مبالغه مبالغم بکنه آن که هیچی برای من ارزش نداره جز بگو این که تو بخندی و تو رو دن تو به دست گید و کل الذی فوق ترابون ترابون کلو تراب میشه مشبه ترابون میشه مشبهون به نوع تشبیه بلیغه چرا؟ چون هز فتحل عداد و بچه شدن چون اعداد و بچه شدن و هم حض شد هم اعداد حذف شده و هم شده. ببینید قصدش هم واقعا مبالغه بوده. یعنی قصدش مبالغه بوده که من قسم میکرم که فقط دوستیه تو رو میخوام اون برام مهمه و قسم میکرم هر چیز دیگه تو این دنیا باشه هر چی میخواد باشه باشه عصب باشه خونه باشه پول باشه هرچه بخواد باشه باشه همه اینها بی ارزشه مثل خاک میمونه کسی خاک رو بهش ارزش خواهد نه مثل خاک میمونه پیش من ارزشی بگید نداری دست تمام شد یه حاشیه یکی توی اینجا پایین نموزج هست که این یک رو ما باید با خودم اول جلسه آتی انشالله بخونم چون یه تیکشم هم بعدا این حاشیه یک میاد که خودش عرضشمندم هست میاد و با اونجا تکمیل میشه که نوشته در صفحه چه و شیش این هاشیه یک انشالله جلسه بعد خواهم خوند براتون وقتی جلسه بعد اینو بخونم درس یه مقدار دوهه میشه بعد درس سوم رو برای شما خواهیم خوند که توی تشکیه بقول خودمون میرسیم به یک تقسیم دیگر که انشالله شما این مباحث رو جمع جورش میکنید تا اون رو هم برای شما بیان کنید پس ببینید درس خیلی که داره خیلی بقول خودمون شیرین از لحاظ مباعثی که داره منم هم فعلی آروم و شمورده میگم شما هم میتونید کامل ازش استفاده بکنید و انشالله تعالی از درس و از مطالب درسی خودتون عقب نمونید و تعالی علمی خودتون رو پیدا کنید همه شما رو به خداوند سبحان بسکرد انشالله که صحت و سلامت قرین شما باشه اختماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته